مصنوی معوی مولوی برنامه چهاردهم، بقیه قصه مطرب و پیغام رسانیدن عمر رضی الله عنه با او آنچه حاطف آواز داد. بازگرد و حال مطرب گوش دار، زان که آجز گشت مطرب انتظار، بانگ آمد مر امر را کی امر بنده ما را باز خر. بنده داریم خاص و محترم سوی گورستان تورنجه کن قدم ای امر برج زبیت المال عام هفت دینار در کفن تمام پیش او بر که تو ما را اختیار اینقدر بستان کنون معذور دار اینقدر از بهر ابریشم ها خرج کن چون خرج شد اینجا بیا پس عمر زن حیبت آواز جست تامیان را بهر این خدمت ببست سوی گورستان عمر بنهاد رو، در بغل همیان دوان در جست و جو. گرد گورستان دوانه شد بسه، غیر آن پیر او ندید آنجا کسی گفت این نبود، دگر باره دوید، مانده گشت و غیر آن پیر او ندید. گفت حق فرمود ما را بنده است، صافی و شایسته و فرخنده است. پیر چنگی که بود خاص خدا، حب بزا ای سر پنهان، بزا. بار دیگر گرد گورستان بگشت، آن شیر شکاری گرد دشت. چون یقین گشتش که غیر پیر نیست، گفت در ظلمت دل روشن بسیست. آمد و با صد ادب آنجا نشست، بر عمر عطصه فتاد و پیر جست. بر عمر را دید و ماند اندر شگفت، عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت. گفت در باطن خدایا از تو داد محتسب بر پیرک چنگی فتاد چون نظر اندر رخ آن پیر کرد دید او را شرمسار و روی زرد پس عمر گفتش مترس از من مرم کت بشارتها ز حق آوردم چند یزدان مدهت خوی تو کرد تا عمر را عاشق روی تو کرد پیش من بنشین و محجوری مساز تا بگوشت گویم از اقبال راز حق سلامت می کند می پرسدد, چونی از رنج و غمانه بهدد نک قرازه چند عبری ها خارج کن این را و باز اینجا بیا پیر لرزان گشت چون این را شنید دست می‌خواید و بر خود میتپید بنگ میزد که خدای بی‌نظیر بس که از شرم آب شد بیچاره پیر چون بس بگریست و از حد رفت درد چنگ را زد بر زمین و خورد کرد گفت ای بوده هجابم از اله ای مرا تو راه زن از شاه را ای بخورده خون من هفتاد سال ای تو رویم سیه پیش کمال ای خدای باعتای با وفا رحم کن بر عمر رفته در جفا داد حق عمره که هر روز از آن کس نداند قیمت آن در جهان خرج کردم عمر خود را دم بدم در دمیدم جمله را در زیر و بم آه که یاد ره و پرده عراق رفت از یادم دم تلخ فراق وای کستری زیرف گند خورد خوش شد کشت دل من، دل مرد وای که از آواز این بیست و چهار کاروان بگذشت و بگه شد نهار. ای خدا فریاد زین فریاد خواه. داد خواهم نز کس زین داد خوا. داد خود از کس نیابم جز مگر زن که او از من به من نزدیکتر که منی از وی رسد دم, دم مرا پس ورا بینم چو این شد کم مرا آن کو با تو باشد زر شمر، سوی او داری نه سوی خود نظر گردانیدن عمر رضی الله عنه نظر او را از مقام گریه که هستی است و مقام استقراق که نیستی است پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو راه فانی گشته راه دیگر است زان که هوشیاری گناه دیگر است هست هوشیاری زیاد ما مزا مازی و مستقبلت پرده خدا آتش درزن به هر دو تا بکی پر گره باشی از این هر دو چونهی تا گره با بانهی بود همراز نیست هم نشین آن لب و آواز نیست چون به توفی خود به توفی مرتدی چون به خانه آمدی هم با خدی، ای خبرها تس خبرده بی خبر توبۀی تو از گناه تو بتر ای تو از حال گذشته توبه جو کی کنی توبه از این توبه بگو گاه بانگ زیر را قبل کنی گاه گریه زار را قبل زنی چون که فاروق آینه اسرار شد جان پیر از اندرون بیدار شد همچون جان بی گریه و بی خنده شد جانش رفت و جان دیگر زنده شد حیرت آمد درونش آن زمان که برون شد از زمین و آسمان جستجوی از ورای جستجو من نمیدانم تو میدانی بگو حال و قال از ورای حال و قال غرقا گشته در جمال زلجلال غرق نیک خلاصی باشدش یا بجز دریا کسی بشناسدش عقل جزب از کل گویا نیستی گر تقاضا بر تقاضا نیستی چون تقاضا بر تقاضا می رسد موج آن دریا بد دین جا می رسد. چون که قصه حال پیر اینجا رسید پیر و حالش روی در پرده کشید پیر دامن را ز گفت و گف نیم گفته در دهان ما بمان از پای این عیش و اشرت ساختن صد هزاران جان بشاید باختن در شکار بیشه جان باز باش همچو خورشید جهان جان باز باش جان فشان افتاد خورشید بلند هر دمی تی می شود پر می کنند جان فشان ای آفتاب معنوی مر جهان را بن ما نوی در وجود آدمی جان و روان میرسد از غیب چون آب روان تفسیر دعای آن دو فرشته که هر روز بر سر هر بازار منادی می کنند گفت پیغمبر که دایم بحر پند، دو فرشته خوش منادی می کنند. که خدایا منفقان را سیر دار، هر شان را دی صد هزار. ای خدایا ممسکان را در جهان تو مده الا زیان اندر زیان، ای بسا امساک کز انفاق بی مال حق را جز به امر حق مده تا عوض یا بی تو گنج بیکران تا نباشی از عداد کافران کشتران قربان همه کردند تا چیره گردد تیغشان بر مصطفی امر حق را بازجو از واسله امر حق را در نیابد هر دله چون غلام یاغی کو عدل کرد مال شه بر باغیان او بازل کرد در نوبی انظار اهل غفلت است کن همه انفاق هاشان حسرت است ادله این یاغی و دادش نزد شاه چه فضایت دوری و روی سیاه سروران مکه در حرب رسول بودشان قربان به امید قبول بحر این مؤمن همه گوید زبیم در نماز اهد سراط المستقیم آن درم دادن سخیر لایق است جان سپردن خود سخای عاشق است ناندهی از بحر حق نانت دهند جاندهی از بحر حق جانت دهند گر بریزد برگ های این چنار برگ بی برگیش بخشد کردگار گر نماند از جود در دست تو مال کی کند فضل خدایت پایمال. مال هر که کارت گرددن انبارش تهی لیکشن در مزرعه باشد بهی وان که در انبار ماند و سرفه کرد اشپش و موش و حوادث پاک خورد. این جهان نفی است در اثبات جو. صورتت سفر است در معنات جو. جان شور تلخ پیش تیغ بر. جان چون دریای شیرین را بخر. ور نمیدانی شدن زین آستان باره. از من گوش کن این داستان قصه خلیفه که در کرم در زمان خود از حاتم تایی گذشته بود و نظیر خود نداشت یک خلیفه بود در ایام پیش کرده حاتم را غلام جود خیش رایت اکرام و داد افراشته فقر و حاجت از جهان برداشته بهروکان از بخششش صاف آمده داد او از قاف تا قاف آمده در جهان خاک ابر و آب بود مظهر بخشایش وهاب بود از اتایش بهروکان در زلزله، سوی جودش قافله بر قافله. قبله حاجت در و دروازش، رفته در عالم به جود آوازش. هم عجم، هم روم، هم ترک و عرب، مانده از جود و سخایش در عجب. آب حیوان بود و دریای کرم، زنده گشته هم عرب زو هم عجم قصه عربی درویش و ماجرای زن با او به سبب قلت و درویشی یک شب عرابی زن مرشوی را گفت و از حد برد گفت و گوی را کین همه فقر و جفا ما میکشیم جمله عالم آلم در خوشی ما ناخوشیم نان ما نی نان خورش من درد و رشک کوزه ما نی آب ما از دیده عشک جامعه ما روز تاب آفتاب شب نهالین و لحاف از ماه تاب قرس مهره قرس نان پنداشته دست سوی آسمان برداشته ننگ درویشان ز درویشی ما روز شب از روزی اندیشی ما خویش و بیگانه شده از ما رمان بر مثال سامیری از مردمان گر بخواهم از کسی یک مشت نسک مرمرا گوید خموش کن مرگ و جسک مر عرب را فخر غضب است و عطا در عرب تو همچو در خط خطا چه غذا ما بی غذا خود کشته ایم ما تیغ فقر بی سرگشته ایم چه عطا ما برگدویی می تنیم مرمگس را در هوا رگ می زنیم گر کسی مهمان رسد گر من منم شب به قصد دلقه او کنم مغرور شدن مریدان محتاج و مدعیان مزور بهر گفتند دانایان فن مهمان محسنان باید شدند تو مرید و مهمان آن کسی کو ستانت حاصلت را از خسی نیست چیره چون تو را چیره کند نور ندهد مر تو را تیره کند چون ورا نوری نبودند در قران نور کی یابند از وی دیگران همچو احمش کو کند داروی چشم چه کشد در چشم ها الا که یشم. حال ما این است در فقر و انا هیچ مهمانی مبا مغرور ما قحط ده سالر ندیدی در سوار چشمها بکشاب و اندر ما نگر ظاهر ما چون درون مدعی در دلش ظلمت زبانش شعشعی از خدا بوی ناورا نی اثر دعویش افزون ز شیس و بلبشر دیو نن ورا هم نقش خیش او همه گوید ز عبدالیم و بیش حرف درویشان بدوز دیده بسه تا گمان آید که هست او خود کسه خرده در سخن بر با یزید. ننگ دارد از درون او یزید بینوا از نان و خان آسمان پیش اون انداخت حق یک استخان اون دا کرده که خان بنهادم نایب حقم خلیف زادم از سلا ساده دلان پیچ پیچ تا خورید از خان جودم سیر هیچ سالها بر وعده فردا کسان گرد آن در گشته فردا نارسان دیر باید تا که سر آدمی آشکاراو گردد از بیش و کمی زیر دیوار بدن گنج است یا خانه مار است و مور و عجده چون که پیدا گشت کو چیزی نبود عمر طالب رفت آگاهی چه سود در بیان آنکه نادر افتد که مرید در مدعی مزور، اعتقاد و صدق ببندد. لیک نادر طالب آید کس فروغ، در حق او نافع آید آن دروغ. او به قصد نیک خود جایی رسد، گرچه جان پنداشت و وان آمد جسد چون تحری در دل شب قبله را قبله و آن نماز او روا مدعی را قهت جان اندرسر است لیک ما را قهت نان بر ظاهر است ما چرا چون مدعی پنهان کنیم بحر ناموس مزور جان کنیم صبر عربی زن خود را و فضیلت صبر و فقر بیان کردن با زن. شوی گفتش چند جویی و کشت خود ماند از عمر افزونتر گذشت عاقلا در بیش و نقصان ننگرد زان که هر دو همچو سیل بگذرد خواه صاف و خواه سیل تیره رو چون نمی پاید دم از وی مگو اندر این عالم هزاران جانور می زید خوشعش بی زیر و زبر شکر میگوید خدا را فاخته بر درخت و برگ شب ناساخته همد میگوید خدا را اندلیب که اعتماد رزق بر توست ای مجیب باز دست شاه را کرده نوید از همه مردار ببریده امید همچنین از پشگیری تاب پیل پیل شد ایال الله و حق نعم المعیل. این همه غمها که اندر سینه هاست از بخار و گرد بود و باد ماست. این غمان بیخکن چون داس ماست، این چونین شد وان چنان وسواس ماست. دان که هر رنج مردن پاره است. جذب مرگ از خود بران گر چاره است. ز جذب مرگ نتوانی گریخت، دان که کلش بر سرت خواهند ریخت. جذب مرگ ارگشت شیرین مرترا دان که شیرین می کند کل را خدا. دردها از مرگ می آید رسول از رسولش رو مگردان ای فضول هر که شیرین می زید، او تلخ مرد هر که او تن را پرستد جان نبرد گوسفندان را ز صحرا میکشند آنکه فر بهتر مران را میکشند شب گذشت و صبح آمد ای تمر چند گیری این فسانه زر ز سر تو جوان بودی و قانه تر بودی زر طلب گشتی خود اول زر بودی رز بودی پر میوه چون کاسد شدی وقت میوه پختند فاسد شدی میوه باید که شیرین تر شود چون رسن تابان نواپستر رود جفت مایی جفت باید همصفت تا براید کارها با مصلحت جفت باید بر مثال همدگر در دو جفت کفش و موزه در نگر گر یکی کفش از دو تنگ بپا هر دو جفتش کار ناید مرترا جفت در یک خرد آن دیگر بزرگ جفت شعر بیشه دیدی هیچ گرگ راست ناید بر شتر جفت جوال آن یکی خالی و این پر مال مال من روم سوی قناعت دلقوی تو چرا سوی شناعت می روی مرد قانه از اخلاص و سوز زین نسق می گفت بازن تا بروز های مصنوی معنوی مولوی را مینابکتاش و و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردهاند